محامی، وکیل ناظلتو مبارزه کردم، جنگیدم المحاکم، جمع المحکمه دادگاه افلاس ورشکستگی الدیون، جمع الدین بدهیها اتعاب موزد، دست رنج یقول محامن، ناضلت فی المحاكم اربع سنوات للحصول على حكم افلاس لموکلی لاسقاط جميع دیونه. ولما طلبت اتعابی، اعطانی نسخه من الحکم وکیلی میگفت، چهار سال در دادگاهها جنگیدم که حکم ورشکستگی موکلم رو بگیرم تا بدهیهاش ساغت بشه وقتی دسترنج خودم رو مطالبه کردم، یه نسخه از حکم ورشکستگی خودش رو به هم داد.